الله الرحمن الرحيم الفصل الأول الدليل الأول القرآن قرآن. اولين دليل شي بود قران يا عبد الله قرانه كريم قران باوندال باال اولين, أولين, بحث أولين. أولين. تعريفه وحجيته شي علي اركه ديته لا لا حصادته بحث احصادته قشنگی ما شاء الله خوشتی في مخاطبین لا خوشتی يا رب بقرار كل المشكله لا غير الله ما الله بابا شاء الله وحجيته تعريف القرآن وحجية بودنه قرآن الكريم قد اعتن الأصوليون بتعريف القرآن وذكروا له تعريف شتى ومن هذه التعريف القرآن هو الكتاب المنزل على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم المكتوب في المصاحف المنقول علینا انه نقلا متواترا بلا شبهه. بله. دقت داشته باشید. میگه به تعریف قرآن اهمیت دادند. اهمیت ورزیدند. و تعاریف مختلفی از قرآن ارایه دادند. یکی از اون تعاریف این تعریفه که قرآن کتابی است که نازل شده است بر رسول الله محمد الله علیه و صلی الله علیه وسلم نوشته شده است در مصحف ها و به شکل متواتر بر ایمان نقل شده است که شبهی در آن وجود فقط در ثبوتش اصلا هیچ گونه شبهه‌ای نیست بله این یکی از اون تعاریفی یکی در رابطه با قرآن ارائهش داده‌اند میگه والله خلاف بین المسلمین ان القرآن حجه على جميع البشر و انه المصدر الاول للتشریع هیچ اختلافی بین مسلمانان وجود ندارد در این چیز که قرآن بر تمام بشر چه هست؟ خجت هست و مصدر اول تشریح است. آقا مصدر اول چه هست؟ و البرحانو الى بر حجیت بودنش چه هست؟ انه من عند الله و البرحانو الى انه من عند الله اعجازه آقا برهان اینه که از جانب الله هست خب از این برهان که از جانب الله هست چیه؟ اینه که اجازش آقا این قرآن موجزه هست و اذا ثبت كونه من الله وجب اتباعه من قبل الجميع زمانی که ثابت شد قرآن کریم از نزد باری تعالی است پس واجب میشه اتباع از قرآن کریم بر که؟ بر همگی ببینید برهان حجیت قرآن اینه که قرآن از نزد خدایه و این برهان چیه که از کجا بدونیم از نزد خدای میگه اجازش حالا که ثابت شد از نزد پروردگاره پس اتباعش واجب بر تمام بشن این تعریفش بود که ارائش داد، در شماره افتادشار و حجت بودنشو آقا قرآن تعریف کرد وقفت بر همیتی هست حجت هست حفتاد و خواص القرآن خاصیت ها بیجگی های قرآن اولا انه كلام الله المنزل على رسوله محمد صلی الله علیه و سلم وعلى هذا لا تعتبر من القرآن الكتب السماویه الاخره كالتورات لانها لم تنزل على محمد خاصیت اول قرآن ویژگی اول قرآن اینه که کلام الله متعال هست که بر رسولش محمد صلی الله علیه وسلم نازل شده طبق این ویژگی کتب آسمانی دیگر همچون تورات و انجیل قرآن نیستند چرا؟ چون آنها بر محمد صلی الله علیه وسلم نازل نشدند پس این ویژگی اول چیه؟ قرآنه؟ ثانيا القرآن هو مجموع لفظي والمعنى وإن لفظه نزل بلسان العربي قالت على إن جعلناه قرآنا عربيا وعلى هذا لا تعتبر الأحاديث النبوية من القرآن لأن ألفاظها ليست من الله را في جيدو من قرآن شيء إنك مجموع لفظ معنا قرآن مجموع لفظ معنا آه؟ هم آه و همانا لفظ قرآن نازل شده با زبان عربی خوب الله متعال میگه که انجا الله قرآن عربی ما این قرآنو با زبان چه نازل کردیم عربی تبقی این ویجگی دوفم که مجموع لفظ و معناش از جانب الله احادیث نبوی جزو قرآن نیستن چرا؟ چون الفاظش از الله نیستن الله بس نمونه نمهونه رسول صلی اللہ وسلم و حکمی بهش وحی کرده با اون الفاظ با الفاظ دیگه و مادم به امت گفته در حدیثش واحد در قالب حدیث که این کارو انجام ندهید قرآن نیست که دقیقا همون الفاظی که الله تعالی نازل کرده باش پس چه بقیه این دوم که قرآن مجموع لفظ و معنی و مجموع لفظ و است از جانب الله هستند. چه این حادیث نبوی از تعریف قرآن چی میشند؟ خارج میشند ثالثاً أنه نقل إلينا بالتواتر، أي أن القرآن النقله قوم لا يتوهم اجتماعهم على الكذب لكثرة عددهم وتباين أمكنتهم عن قوم مثلهم، وهكذا إلى أن يتصل النقل برسول الله صلى الله عليه وسلم. مجبية سبب قران نسكي بشكل متواتر عن نقل شدة القرآن، القرآن بشكل تنقل شدة. یعنی داره توضیح میده که تواتر یعنی چی یعنی رو یک گروهی نقل کردند تک تک شو. تک تک آیاتش گروهی نقلش کردند که اینو وهم که بیان با همگیگه جمع بشند و دروغ بگن این اهم وصل وجود نداره مثل این که آقا مردم پنج هزار انسان بگن چینی وجود داره مگه میشه بابا اینا همشون با هم اتفاق بکنند که بیان ما رو فریب بدن که چیزی وجود دارد؟ نه. تواتر اونو میگن گروهی اون رو نقل کرده باشند که این احتمال که بیایند و با هم دیگه دروغ بسازن وجود نداشته باشه. به خاطر زیاد بودن تعدادشون، به خاطر مختلف بودن جاهاشون. و این نقل این قوم از قومی مثل خود این خبر نقل کرده باشند. چطور؟ یعنی این تعداد زیاد از تعداد زیاد دیگر و اون تعداد زیاد دیگر از تعداد زیاد دیگر به تا براسباب کی؟ برسول غرامیه اسلام صلی الله عليه و و على هذا فما نقل من القراءات ان غیر طريق التواتر لا يعتبر من القرآن مثل كلمته متابعات دوستان میگه به این علت آنچه که از قرآن کریم نقل شده آنچه که یا به عبارت دیگر اون قرائاتی که نقل شدند برای ما ولی به شکل تواتر نقل نشدند نا به چه شکلی نقل شدند آغای مهدیجان یوسفی اون قرائت هایی که نقل شدن برای ما امت محمد خوب؟ اون قرائت هایی که نقل شدن برای ما به شکلی چی متواتر تواتر نه ياخي تواتر نه بله رساله متواتر بالي. اون قرآت هایی که به شکل متواتر نقل آیا اونا جز قرآن حساب میشن یا نه؟ <تصفح> نه نه دیگه دل قرآن اینا رو ننوشتن چون به شکل متواتر نقل نشدن هر چی که آقا تو این مصحف هست اینا اونهایی هستن که به شکل چه اومدن؟ ما یک سری روایاتی در احادیث کتب حدیثی داریم متواتره اونجا اومده که آقا مثلا فلان صحابه گفته که به این شکل ولی چون که فقط یک صحابه بوده اونو ما میگیم جز قرآن حساب نمیشی شرطی این که آقا ما یک آیه رو جز قرآن بدونیم اینه که به چه شکل نقل شده باشه بره خودش میگه و ها طبق این ویژگی سوم که باید به شکل متواتر نقل بشه میگه اون قراراتی که از راه غیر تواتر اومدن اونا جز قرآن دوست هم. مثالی میزنه مانند کلمه متطابعات مانند کلمه متطابعات که در قرآن کریم اومده در آیه 196 سوره بقره که اونجا میاد فمن لم یجد فصیامو ثلاثتی ایام هر قسمه یا در قرآن که خودمون داریم اومده سه روز روزه بگیره ابن مسعود قراءات داره که میگه ایام 3 تا متتابعات کلمه متتابعات رو نقل میکنه ولی از اون جایی متتابعات تواتر ثابت نیست لذا جزء قرآن حساب نمی مثل كلمة متتابعات خب رابعا انه محفوظ من زیاده والنقصة نقص ها 4 ويجاقية قرآن الكريم همين هسك الزيادة وقصانتية التحريف محفوظة لقوله تعالى بدليل قول الله متعال خد الله متعال قفتك إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ما قرآن رو نازل كردئم ذكر مانية قرآن ديگه ما قرآن رو نازل كردئم ذكره ما از اون البته کشکار میکنید محافظت میکنید خامسا انه موجز وی جگید پنجوم قرآن کریم همین هست که قرآن چه هست است. هست بقیه باقیه که مثلش بیارند ومعنه ذالک اجز البشر اجمعین ان الاتیان بیمفلهی میگه معنای معجز بودن قرآن که تمام بشر از آوردن بمانندش ناطوان شده وقد ثبت اعجازه بتحدي القرآن من ان یأتو بمثله فعجزو ثم تحداهم بعشر صور فعجزو ثم تحداهم بصورة واحدة من صوره و ومع هذا التحدي اجز العرب ان المعارزة بالرغم یا به می من وجود المقتزی للمعارضه و عدم المانعی منها ویشه که پنجم موجزه بودن قرآن کریم هست میگه معناش چه هست؟ معناش این هست که تمام بشر از آوردن بمانند قرآن ناتوان شدن خب و ثابت میشه این موجزه بودن قرآن این اجاز قرآن به این چیز که قرآن آقا اومد تحدی کرد مبارزه تلبی کرد طلب حریف کرد به چه شکل؟ به این شکل که قرآن تحدی کرد که شما مثل قرآن بیارید فا اجزف دوباره تحدیشون کرد که خوب باشه ده تا سوره بیارید نتوانستن دوباره تحدیشون کرد که یک سوره بیارید باز هم نتوانستن خوب میگه این تحدی که قرآن کریم کرد عرب بودند آجز شدند از آوردن مثل قرآن عاجز شدند میگه اینجا اون چیزی که اقتضای معارضه بکنه وجود داشت به زبانشون بود در دوره بود که در ادبیات عرب به اوج رسته بودند هیچ معنی نداشت که بیان معارضه کنند مثلا اگر قرآن کریم اومده بود به فرس هم گفته بود که آقا شما بیایی تو مثل قرآن ما میگیم که این تحدی شرایط رو نداشته ولی افرادی رو تحدی کرده بود که اون مقتضی معارضه وجود داشت ها هیچ معنی وجود نداشت نتوانستند پس اینا ویژگی های چی بودند؟ بالي. اما وجوه اعجازش قرآن از چند جهت است. هست از اس جهتای مختلف وجوه اعجازه و ومین ها بلاغت العرب وجوه اعجاز قرآن کریم از چند جهت یکیش در از لحاظ بلاغه قرآن کریم عرب ها رو اصلا بحیرت داشته بود بلاغه قرآن کریم شما اگر بلاغه سر در بیارید متوجه میشید که واقعا چه بلاغی داره قرآن کریم دو اخباره به وقائع تحدث في المستقبل وقد حد وقد حدثت فعلا اخبار او به وقایعی که مستقبل و قد حدثت فعلا. دوغ بر وجه اعجاز قرآن کریم اینه که قرآن کریم اومده از وقایعی خبر داده که در آینده پیش میاند ببینید این اجازه اومده از وقایعی خبر داده در خودش که که پیش میاد. در زمان نزول برای آینده پیش میاد. که میگه و قد حدثت فعلا میگه اون وقایع فعلا هم چونین شدند همانطور که قرآن گفته بود مثلا رومی ها شکست خوردند و بعدا غلبه میکنند آه؟ در سوره رومی ها دیگه بعدا هم چونین شد فعلا هم اون خبر همانطور که قرآن گفته بود شد پس دومین وجه اجازش دادن از مستقبل بود سه اخباره بوقع الامم السابقة المجهولة اخبارها امدن العرب جهلا تاما لعدم ما يدل عليها من آثار و معالم اگه من وجه اجازه قرآن کریم اینه که قرآن از وقایه امتهای قبلی که اخبارشون کلن گم شده بود نزد عرب کاملا خبر داده دا بود چون هیچ آثار و معالمی که دلالت بر اون اخبار میکنه بر اون وقایب بکنه باقی نمانده بود ولی قرآن کریم اومد کار کرد آقا از آد گفت از ثمود گفت از فلان گفت چار اشارته الى بعض الحقائق الکونیت التي اثبتها الالم الحديث والتي الیتی لم تكن معروفتا من قبل ببینید وجه اعجاز دیگر قرآن این است که اشاره به بعضی از حقایق کونی کرده مرتبط به کونو و عالمه که علم جدید اونا رو اومده چکار کرده ثابت شروع کرده خبر داده اشاره کرده به یک سری کونی که علم جدید اونا رو اومده چکار کرده ثابت کرده و اور زمانی که قرآن هم نازل بوده اینا اصلا همتونین حقایق علمی وجود نداشت معروف نبوده پس اینها از ویژگی های مسائلی بودن تا اینجای کار بانین یا بس مریضی آقای بهدی خان مریضی